این داستان ماهیگیر و دیو زندانی مرد ماهیگیر روز بعدی رو گذرونده بود بار اولی که تورش رو توی آبهای دریای سرخ انداخته بود فقط یه لنگه کفش کهنه به تورش رو افتاده بود بار دوم هم فقط یه گلدون شکسته پر از لجن رو از آب بیرون کشیده بود بار سومی که تورش رو از آب بیرون کشید باز هم از ماهی خبری نبود. دید تنها چیزی که به تورش افتاده یه بطری مسیه کهنه است. اما روی بطری چیزی بود که نگذاشت مرد ماهی گیر مثل دو دفعه قبلی بد و بیراه بگه و اون رو دوباره توی آب بندازه. شاید برق بطری زیر نور خورشید بود یا شایدم موم عجیبی که با اون در بطری رو مهر و موم کرده بودن و با نقش و نگارهای عجیب تز این کرده بودن دلیل این بود که ماهیگیر چیزی نگه شایدم این بود که اگه مرد ماهیگیر رو قسم میدادی که صدای ضعیفی رو از توی بطری شنیده یا نه نمیتونست با اطمینان بگه نه به هر حال ماهیگیر مجبور شد دستش رو توی جیبش فرو بکنه و چاقوش رو در بیاره و موم دور در بطری رو بشکنه و در پوش سنگین اون رو از جا در بیاره. ماهیگیر بطری رو سر و ته کرد و تکونش داد. تنها چیزی که از اون بیرون ریخت مشتی ماسه به نرمی قبار بود. مشتی قبار که جلوی چشمای ماهیگیر به جای اینکه پایین بریزه با وزش نسیم به طرف بالا حرکت کرد و قبار به شکل توده دود در اومد. توده دودی که به شکل تودهی مه در اومد. تودهی مهی که به شکل ابری در اومد و بالای سر ماهیگیر رو پوشوند. ابری شکل پاهای گنده و بدنی بسیار بزرگ با دست های قوی و قدرتمند، با سری گنده، تاز خشمگین، با حلقه های در گوش. سیبیل‌های دراز و چشم های وحشی و بیره. به عبارت دیگه، قول بسیار بزرگی بالای سر ماهیگیر شناور شده بود. قول قرشی کرد و گفت ای تخم ماهی لرزانکی جلویم زانو بزن و خودت رو برای سفر مرگ آماده کن ماهی گیر که حسابی ترسیده بود خودش رو روی ماسه های ساحل انداخت و با التماس گفت من من مگه من چی کار کردم من داستان لایالدین و قول چراغ جادو رو بلدم مگه من آزادت نکردم؟ مگه حالا تو نباید آرزوهای من رو برآورده کنی؟ قول قرید درسته تو آزادم کردی اما دیگه برای برآورده کردن آرزوها خیلی خیلی دیر شده توی صد سال اولی که توی این زندان مسی گرفتار شده بودم پیش خودم قسم خورده بودم تا از آرزوهای هر کسی که منو از این تو آزاد کنه برورده کنم. حالا هر چقدر که میخواد تمکار باشه و هر آرزویی که میخواد داشته باشه. اما هیچکس کس کمکم نیومد. هرچی گذشت بیشتر صبر و قرارم رو از دست دادم. توی دیویس سال بعد قسم خوردم که به هر کسی که آزادم کنه اونقدر پول و ثروت بدم که هرچی خرج کنه تموم نشه. اما هیچکس به کمکم نیومد. من کم کم عصبانی شدم. توی سی سال بعدی قسم خوردم اگه کسی آزادم کنه یک کشور کامل رو بهش بدم. اما هیچکس کمکم نیمد و من باز هم عصبانی تر شدم. آخرش قسم خوردم. اولین کسی که چشمم بهش بیفته مزده انتقام رو بهش بچشونم. حالا بعد دو هزار سال زندانی شدن توی این زندان تو همون کسی هستی که باید مزهٔ انتقامم رو بچشی قول شمشیر بزرگ برراغ و خمیدهای رو از کمرش بیرون کشید ماهیگیر با اینکه تمام بدنش به لرزه افتاده بود سری فکرش رو به کار انداخت که ببینه میتونه راهی برای نجات جونش پیدا کنه یا نه ناگهان میون حیرت و تعجب قول ماهیگیر گیر چشمک دوستانهی به اون زد و با چرب زبونی گفت خب پس دست به کار شو دیگه این همه ننه من قریبم بازی ها برای چیه؟ راستش اونجوری که تو سر و کلت پیدا شد انگار که از بیب اومده باشی اولش خیلی روی من تاثیر گذاشتی اما بد نیست اینو بهت بگم که من اصلاً به جادو این چرندیت اعتقادی ندارم قول که صورتش از خشب کبود شده بود گفت یعنی چی که به جادو اعتقاد نداری؟ ماهی گیر خنده ای کرد و با لحنی تحقیرآمیز گفت ندارم دیگه همین جادوگر و قول و تلسم و این چیزا این روزا دیگه هیچ کسی مزخرفات قدیمی رو باور نمیکنه چی؟ مزخرفات قدیمی؟ ماهیگیر با آرامش ادامه داد. این چیزا رو گفتی که یه خورده بخندیم و خوش باشیم مگه نه؟ حالا فقط به من بگو کجا قایم شده بودی. جوری وانمود کردی که انگار از توی این واسی بیرون اومدی تا من هم حقه رو که بلدی، تماشا کنم و بهت آفری بگم که به این خوبی بلدی حقه سوار کنی. بعدشم میتونی به من بگی دفعه بعد خیال داری کجا نمایش دیدنیت رو اجرا کنی. قول میدم کلی از دوستای خنگ و حالوم رو برای تماشا بیارم تا تو هم پول خوبی به جیب بزنی. بعد هر دو با هم دست میدیم و میریم خونه پیش زن و بچه خب نظر چیه؟ قول انقدر عصبانی شده بود که اگه کاردش میزدی خونش در نمیومد دوده سبزرنگی از گوشهاش بیرون زد و گفت چطور جرد میکنی بگی من یه قول تقلبیم. حالا نشونت میدم که یه قول واقعیم. نشونت میدم که ترسناکترین قولیم که تو حالا از بطری بیرون اومده. همین حالا دوباره برمیگردم توی بطری تا بهت ثابت بشه. ای صورت گنده و بد ترکیب قول شروع کرد به زوب شدن. دست و پاهاش محو شدن و بدن گندهش توی هوا که پاره شد. همه جاش بیشکل شد و به شکل ابری بزرگ از مه در اومد. عبری که به شکل گردبادی نازک از دود در اومد و از دهانه تنگ بطری وارد اون شد. اونقدر رفت و رفت تا کاملا توی بطری قرار گرفت. همین که آخرین زره های دود توی بطری جا گرفت مرد ماهیگیر پرید در پوش سنگین بطری رو برداشت و اون رو محکم توی دهانی بطری فرو کرد و خوب اون رو سفت کرد مرد ماهیگیر که عرق از همه جاش را افتاده بود نفسی کشید و گفت دیگه تا ام دارم تور رو به آب نمی‌ندازم. بعد دور خیز کرد و تا جایی که زورش می رسید بطری رو پرت کرد و توی دریا انداخت پس اگر روزی گذرتون به ساحل دریا افتاد و اونجا چشمتون به یه بطری مسی خورد که توی آب داره قلوب قلوب بالا و پایین میره یا آبون رو توی ساحل انداخته قبل از باز کردن در اون خوب فکراتون رو بکنید بعدا نگید کسی به ما نگفت سفر به دنیای پر رمز و راز ها